هر وقت شاههایان جوانه میزنند و برگ میآورند شما میدانید که تابستان نزدیک است به همان طریق وقتی تمام این چیزها را میبینید بدانید که آخر کار نزدیک بلکه بسیار نزدیک است بدانید تا همه این چیزها واقع نشود مردمان این نسل نخواهند مرد آسمان و زمین از بیم خواهن رفت اما سخنان من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 و با میگ و ساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمیدانند اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت، در جایی که گریه و دندان بر دندان سایدن وجود دارد.